راجع به صفات امام علی السلام بود که امام چه صفاتی رو باید داشته باشه در هفته قبل عرض کردیم که امام که ما فعلا اون مقداری که مطلوب ماست از او پیروی بکنیم و احکام و وظائف رو از او بگیریم و روش او و عمل او را میزان خودمون قرار بدیم و خلاصه مطلب به او اقتدا و پیروی و تحسی کنیم این که الان مورد حاجت ماست برای امام این جهته این باید اولا صادق باشد به همون تفصیلی که در هفته گذشته عرض کردیم یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین این تفصیلش گذارمشت. از جمله صفات امام از کی باید پیروی کنیم و از کی وظایفمون رو اخذ کنیم بایستی هادی به حق باشد ما را به حق هدایت کند این صفت امام است امامی که ما باید از او پیروی کنیم هادی به حق باشد دلیل این صفت چیست و معنای ای چیست آیه شریفه میفرماید افمن یهدی الالحق الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا یهدا آیا کسی که هدایت بکند شما را به حق او سزاوار است که پیروی بشود و گفتار و کردار و رفتار و اعتقاد و اخلاق و عمل او را برای خودتون میزان قرار بدید او باید پیروی بشود من یهدی علی الحق احق ان کسی که هدایت به حق میکند آیا او سزاوار است که انسان از او پیروی کند اما لا یهدی يا یا اون کسی که خودش راه یافته نیست و دیگری باید دست او را بگیرد و او را هدایت کند از ای باید پیروی کرد کسی که انسان رو هدایت کند به حق او سزاوار است که انسان از او پیروی کند یا کسی که خودش راه رو نمییابد و نمیتواند راه رو پیدا کند مگر اون که دیگری او رو راه نمایی کند و خلاصه به تعبیر فارسی خودمون کوری ازاکش کور دیگر که نمیتونه باشه او خودش راه نیافته. وزن میشود به اینکه هدایت نشده و اگر هدایت بشود باید دیگری او را هدایت کند محتاج به هدایت دیگری است یه چنین شخصی لایق برای پیروی نیست این مطلب مطلبی است آیه شریفه میفرماید ولی در حقیقت یه مطلب واضحی که هرکس به وجدان خودش او رو درک می و می‌آورد و به فطرت خودش می بینه حرف, حرف خیلی خوبی است. کسی که انسان را به حق هدایت کند او سزاوار از که انسان دنبال او بره تا کسی که خودش راه رو نیافته و به تعبیر بنده چنون که از کردم او خودش کوره و یکی دیگه باید راه رو به اونشون بده من دنبال او برم پس بنابراین در این آیه شریفه معین میکنه از کی پیروی کن؟ کسی که تو را به حق هدایت کند تو را به حق راه نمایی کند از او باید پیروی کرد فرمودن علما و بزرگان فرمودن به اینکه پیروی از حق و عمل به حق در مقابل عمل به باطل و پیروی از باطل پیروی از حق یه چیزی است که هر کسی به وجدان خودش و به فطرت خودش او رو یک امر نیکو و لازمی میداند که من باید به حق دنبال حق بروم و از باطل پیروی نکنم هر کسی رو مییابد و درک میکند اگر یه کسی یه راهی رفت و عوضی بود اگر بهش بگن بابا چرا این کار رو کردی و اون که این کار غلط بود و باطل بود نمیگه چی بیداره دنبال باطل رفتم این نمیگه بلکه میگه من خیال میکردم این حق است و لذا رفتم پس از این چی معلوم میشه؟ از این معلوم میشه دنبال حق رفتن و پیروی از حق کردن یه است که هیچ عاقلی او رو می میشود به اینکه رد نمی کنه و لازم میداند پیروبی او رو و هر کسی هم که پیروی نکنه در مقام عضر آوردن میگه خیال میکردم این درسته و باید این چنین کنم نمیگه چه اب داره این چنین کردن پس معلوموشه دنبال حق رفتن یه مطلبی است که به وجدان و فطرت هر کس یه مطلب لازم و صحیح و است. خدای تعالی هم همین مطلب فطری رو داره حالی آدم میکنه و متذکر میکنه انسان را اما فمن یهدی الالحق حقون یتبه تو که به حسب فطرتت و به حسب وجدانت طالب حق و طابع حقی و دلت میخواد که دنبال حق بری آیا کسی که تو رو به حق راه نمایی کند او سزاوار است که دنبال او بری یا کسی که حق رو نمیداند و دیگری باید بهش ارائه بده پس این داره به این امر واضحی که فطرت و وجدان انسان به او حاکم است داره انسان رو به او متذکر میکنه پس بنابراین من باید دنبال کی برم این آیه چی میگه به من میگه دنبال کسی برو که تو رو به حق هدایت کند راهنمای به حق باشد ما قبلا که این بحث شروع کردیم از کردیم ما حالا صفات امام رو به عنوان صفات عامه که امام چه صفتی باید داشته باشه. ما مثلا از میکنم با یک سنی که میخوام بحث کنیم میگیم قرآن میگه اونی رو که من پیروی می میکنم از او باید این چنین صفاتی داشته باشه. باید صادق باشه باید هادی به حق باشه بگردی رو پیداش کن که کی صادق است و کی هادی به حق است؟ مثاقش کیست؟ بعدا باید بحث کنیم. ولی الان ما در بحث مثاقش نیستیم. ولی میگیم باید راهنمای به حق باشد. این صفت امام است. امام و پیرو کسی که ما پیروی از او کنیم و به قول روایات یا شاید روایت باشه یا کلمه علما باشه ام ما جو ال امام و اماما لیعتم به امام رو امام گفتن برای اینکه انسان دنبال رو او باشه و قول و فعل و اعتقاد و عملش تابع او باشه این آیه به ما میگه دنبال کی برو دنبال اون کسی برو که تو رو به حق هدایت کند کی میتونه مرو به حق هدایت کنه کی صلاحیت دارد که مرو به حق هدایت کنه؟ اگه من فکرم عوضی رفت او من رو هدایت کنه اگر عملم اشتباه بود او مرا هدایت کنه اگر اخلاق و روشم اشتباه بود او مرا هدایت کنه کی میتونه این کار رو بکنه؟ اون کسی که اولا عالم به حق باشد خودش حق رو بشناسه کسی که حق رو میشناسد صلاحیت دارد که حادی به حق باشد او صلاحیت کسی که حق رو نمیشنسی که صلاحیت نده من رو کنه عالم به حق باشد پس بنابراین لذاست که علما و بزرگان می‌فرمایند از همین آیه می توانیم استفاده کنیم که اون کسی که ما از او پیروی می‌کنیم باید علم افراد باشد به جهات دینی حالا بنده شاید یه هاشیه کوچولو هم عرض میکنم که نه فقط به جهات دینی به خیلی از چیزهایی که با دین مرتبطه با چیزهایی که با دین مرتبط میشه یه وقتی یه چند وقت پیش بود به مناسبتی یه آقای گفتش که در زمان و ازمی شاید حکومت سابق در تا تاقوت به قول خودمون از شاید به این که یه دونه استاد اسمش هم گفت حالا من یادم نیست است استاد شاید ریاضی یا غیر ریاضی آمده گوستر کلاسی در دانشگاه با طالب درسی درسیش مثلا درسته فرمایید به اینکه که ریاضی میداد. درس ولی یه معادله یه فرمولی یه چیزی درست کرده چی زبدر چی میکنیم و فلان کار رو میکنیم و چنین میکنیم و ما مطلب و تحسل از این فرمول که خدا نیست اون چی نتیجه یه؟ که فرضیه خدا یه فرضیه باطلیه اون کسی منو میتونه هدایت کنه که بلد باشه این فرضیه کجاش ابدره کجای مثلا فرز بفرمه علم جبر و فیزیک و هندسه و طبیعیات مرتبط میشه با خداشناسی شناسی و کجاش میتونه از مشاهد من رو بیدین کنه و کجاش میتونه مرو دیندار کنه اینو باید دلد باشه بنابراین افمن یهدی الحق کسی میتونه و حادی حق میتوانه باشه که تمام دین را به مرتبه اعلا و کاملش بداند و حتی غیر دین از مطالبی که ممکنه مرتبط به دین بشه اونا هم باید بلد بشه که در یه قد برمیگرده به دین ولی بالاخره باید اون بلد اگر اون آقای فیزیکدان یا شیمیدان دان اون معادله رو پیش مثلا بند حل میکرد بندهام یا او رو تصدیق میکردم یا حد اقلش این بود که میگم نمیفهمم تو چی میگی؟ پس من صلاحیت برای هدایت او نداشتم باید از کی پیروی کرد؟ یهدی الالحق تو رو به حق هدایت کن میگه پس بنابراین باید عالم به جمیع مطالب دین و اعلم از همه در جمیع مطالب دین باشه زیرا که هر کسی یه فکری داره یه مرجع میخواد که مرا هدایت کنه هر کسی یه چیزی پیش خودش درست میکنه یه مقدمات و تالی داره هر از میشه همتون که این هم مختلفه افکارمون همینجور مختلف این مهندس یه جور فکر میکنه دکتر یه جور فکر میکنه عمله یه جور فکر میکنه بنده یه جور فکر میکنه هر کدوم هم ممکنه افکارشون مرتبط با دین بشه باید یه کسی باشه تمام این افکار رو بتونه بخونه و تمام ارتباطاتش رو با دین بلد باش و کجا میشه اشکال به دین وارد بشه و کدوم راه راه حل این اشکال و راه هدایت است هر کسی رو پیدا کردی سلام بهش برسون و او امامت توست او امامت توست افا من یهدی الالحقه احق ان انیو تبع اما لایح بی الا پس بنابراین اول یکی از صفات امام این که صلاحیت هدای برای هدایت به حق داشته باشد چه جهت که باید بلد باشه و ثانیاً باید اشتباه هم نکنه باید ارز می شود اناد و لجاج با حق نداشته باشه در عین اینکه حق رو بلده دلش بخواد که من رو هم به جانب حق بکشه ممکنه من یه چیزی بلد باشم ولی نخوام که شما یاد بگیری پس بنابراین کی صلاحیت دارد که هادی به حق باشد حق رو بلد باشه اشتباه و خطا نکنه و دلشم بخواد و اینو به عنوان یک وظیفه‌ای که خودش رو هادی بداند و بکشد دیگرون رو به سمت حق این چنین شخصی صلاحیت دارد که هادی به حق باشد و لزوم که علما فرمودند به اینکه باید اعلم خلق و اتقا و اینا رو در بحث اسمتم به مناسبتی در باب اسوات انبیا گفته بودیم اگر گناهکار باشه این صلاحیت برای هدایت نداره اگر هدایت میکنه ما رو و میگه دروغ نگو ولی خودش دروغ میگه به قول علما میگن قولش مکذب فعلش و فعلش مکذب قولش کسی گفتاره ای رو اعتماد نمیکنه کنه این صلاحیت برای هدایت نداره پس این باید عالم و اعلم خلق باشد باید معمونه از خطا و گناه باشد که همون معنیم اسمت باشه که اون حالا بعد باید بگیم و بایستی که, بایستی که ای رو هم در می شود از خطا باشه و بایستی هم که در مقام هدایت و ای رو به عنوان یک ای که بخواد دلش بخواد مردم رو هدایت کنه طالب ای باشه خب ما باید ای رو پیداش کنیم دنبال همچه آقایی بریم نصداقش چیه و کیه باشه بعد ولی اجمالش رو یک کلمه عرض میکنم وقت میشم یعنی میرم تو مطلب دیگه ارز میشود به اینکه این بنده خدای عالم بزرگوار این میر حامد حسین که عالم هندی بوده از بزرگان علما شیعه چقدر زحمت کشیده خدا میدونه چقدر کتابای سنیا رو خونده خدا میدونه داند و... نمیدونم چند 500 شاید دو یا سه روایت از کتب سنیا که قال رسول الله صلی الله علیه و آله از می شود به اینکه که این که کنفیک و کتاب الله و اطرتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الهوز اترت و قرآن از هم جدائی ندارند اینا با همه هم. پس من که باید دنبال قرآن برم باید دنبال اطرت برم که اطرت از قرآن جدا نیست فونسد و چند تا این بزرگوار نقل کرده باید نگاه کرد شاید متأخرین بعدی بیشتر نقل کرده باشن مرحوم امینی رضوان الله تعالی علیه شاید بیشتر نقل کرده باش. چند تا روایت داریم علیون مع القرآن و القرآنو مع علی. علی مع الحق والحق ما علی لن یفترقا هیچگاه از هم جدا نمیشن یه بنده خدایی از میشود به اینکه به ابی ایوب انصاری انساری ایوب از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و بود اون آقایی بود که خونش مدینه بود و پیغمبر والی واله بعد از هجرت وقتی هجرت کرد اولین جا که وارد شد وارد شد خونه عویعیوب انصاری چه <تصفيق> خب مسلمونا قبلا ادهی رفته بودن اونجا یه, یه جمعی مسلمونی درست کرده بودن در مدینه پیش از هجرت اون مسلمونا اومده بودن استقبال پیغمبر هریکی میگو بیاد خونه من خواستم پیغمبر رو ببرم خونه خودشون پیغمبرم فرمود شاید به تعبیر بنده من این شطور رو راهان میکنم هر جا رفت در هر خونه یه وای سادینم اونجا این شد و هم شاید از کوچه پس کوچه ها هم جور دل بخواهی میرفتم وارد شد در خونه عبیب و ایوب و انصاری اونجا وای ساد پیغمبر ساواله واله وارد شد خونه عبیب نمیدونم یه اتاق داشت دو اتاق داشت خونه خیلی محق. خیلی خب من اونارو کار ندارم یه آقای به این آقای ابو ایوب و انصاری میگه تو چطور شد که در جنگ جمل شاید در جنگ جمل در جنگ جمل شمشیر کشیدی و با کمک به کمک امیل مؤمنین رفتی و با تلحیب و زبیر و آیشه و اینها جنگیدی چطور شد این کاری کردی گفت به اینکه تو همین اتاق شاید همون اتاق همینجه که الان هستی اومده بود خونه ابو عیوب این سوال رو ازش میکرد. تو همین اتاقی که تو هستی رسول <تصال> خدا صلی الله علیه و علیه اینجا نشسته بود علی سمت دست راستش بود من سمت دست چپش نشسته بودم یه بنده خدای دیگه اونجا وای بود شاید انس ابن مالک بود اونم خادم حضرت بود اونجا وای بود در زدن تا در زدن رسول الله صلی الله علیه و آله علی فرمود باز کنید در رو به روی طیب امار بن یاسر پاکیزه‌ای آمده است عمار یاسر اومده وا کن وقتی وارد خانه شد ابی عیوب داره به بنده خدا میگه یه وقتی وارد خانه شد رسول الله صلی الله علیه و آله علی علی چشمش که ماروف داد فرمود ای عمار بعد از من فتنه ها می شود و مردم به همدیگه شمشیر میکشند ای عمار اگر دیدی تمام مردم همه کلهم به یک راه میروند و علی تنها یه راه دیگر رو انتخاب کرده میره تو دنبال علی برو اونارو راه تمام مردم به راهی میروند و علی تنها از راه دیگری میروند تو دنبال علی برو زیرا او تو را از حق دور نمی کند و به باطل نزدیک نمی کند من برای این هد رفتم دنباله هد این رو باید که کردم تو کتابا از کتاب سنیان عقل کردن این از کتاب سنیان بنابراین ما باید یه هادی به حق پیدا کنیم و دنبال او باشیم کی هادی به حق است کی صلاحیت دارد که تمام وظائف و دستورات علمی و اعتقادی و اخلاقی و عملی و هر چی که مربوط به دین است بلد باشه به نحو کامل و عتم در هر شرایطی و برای هر خلقی و برای هر طبقی و برای عالم و جاهلدنی یفاظه بود کیه که اینو بلد باشه؟ دنبال او باید را بگرد پیداش در زیل همین آیه شریفه مکرر تو روایات به همین آیه استدلال کردن من یهدی علال از ارز می به اینکه یه بنده خدای شراب خورده بود آوردنش پیش عمر از می به اینکه که دستور دادون تازیانش بسید این بنده خدا گفت یا زمان عبیبه که حالا بود حالا بنده تردید دارم این بنده خدا گفتش که من تازه مسالمون شدم نسرانی بود تازه مسلمون شد تو قبیله و عشیره و مذهب ما خمر خوردن حرام بودیم اسمو من منو خبر نداشتم از این مطلب که در دین اسلام خوردن خمر حرام بلد نبود خوبی یخورد عمر به عبیبک نگاه کرد عبیبک و عمر نگاه کرد چه باید کرد گفتن مراجعه کن به امیرالمومنین سلام الله علیه امیرالمومنین فرمودی که سی مأموری به تعبیر من ایرو بر داره ببر در در خوزهای مهاجرین و انصار مثل اینکه شب‌ها مثلا تو مسجد چند نفر چند نفر از مهاجرین ولو هم میشستن حفت میزدن از انصار ولو بره توی این حوضه مهاجرین و انصار ای رو معرفی کنه به اینا ببین از اینا بپرسه آیا یکی از شماها آیه حرمت خم را بری ای خونده اید یا نه اگر گفتن که خونده ایم باید حدش بزنین اگر گفتن نخونده ایم حرفشو بپذیرید و راهاش یه کسی به علی علی السلام عرض کرد یا علی خوب راه نمایی کردی فرمود میخواستم این معنای افرمن یهدی الالحق احق حق انجتبه رو اینا رو عملا حالیشون کنم، یعنی نمیدونن چه باید میکنن به مناسبت حالا همجوری که حد گفتم یادم اومد در یه مجلسی که ازمی شود به اینکه که شاید عمر و عبیق همه با هم دیگه بودن ازمی شود به پنی نفر رو مرد رو. ورده بودن که این پنجده زنا کردند شباید دستور دارم برای این تازیان نشون بسند امیرالمومنین سلام الله علی فرمود این حکم اینا این نیست ارز کردن یا علی حکمش چیه فرمود این رو بکشین اون رو رو سنگسار اون رو تازیانه بزنین اون رو تازیانه بزنین اونم رهاش کنین این دیگه چیه؟ همه یه عمل انجام دادن چطور این حکمش اینجوریه فرمود اما اونی که بکشین او عرض می شود به اینکه کافر کافر است و با زنا کردن از شرائط زمین خارج شده و به حکم حرضی پیدا میکنه باید کشتش اما اونی که سنگسارش کنید او زن داشته و محسن بوده و محسن اگر زنا کند باید سنگسارش کرد. اون یکی که صد تازیانش بزنید کسی بوده که زن نداشته و زنا کرده. اون که تا باید تازیانه بخوره او عبد بوده. عبد حدش نصف خوره. اونی که باید آزادش کنید دیونه. دیونه حد نداره. دیوانه حد نداره. او قزو يو انغا مطالب هستش که تو علموش الله بنابراین افمن يهدي إلى الحق احق أن يتبع روايات عليون مع الحق والحق مع علي القرآن و القرآن مع علي مثل اهل بيتي که سفینه من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق چند تا روایت خدا میدان همون حامد حسین بیچاره شاید بعضی از روایاتش یه جلد جمع کرده یه جلد از این که در ها کرد که این سنی کجا گفته اون سندی کجا گفته او یکی کجا گفته بنابراین همینجور اعلم کم علی اغزا کم علی و همینجور انوا و اغزا بنابراین این مصداغ حالا بعدا باید در مصداغ بحث کنیم این مطلب گذشت و تمام شد یک کلمه دیگری که راجع به این آیه باید ارز کنیم و مطلب تمام است، این است که یکی از بزرگان این چنین می فرماید, فرماید به اینکه که من یهدی الحق اینچه نیمی فرماید. فرماید آیا کسی که هدایت به حق می کند؟ او سزاوار است که انسان از او پیروی کند اون ادلش چیه؟ نفرموده افا من یهدی علی الحقه حق و اما ام من لا یهدی کسی که هدایت به حق می کند باید پیروی کرد یا کسی که هدایت به حق نمی کند اینجوری نفرموده فرموده است افا من یهدی علالحقه حقان یطبر کسی که هدایت به حق می کند سزاوار است که انسان پیروی او کند یا کسی که هدایت نمی مگر اینکه دیگری او را هدایت کند از این مقابله ما بین این دو که به قول طلبه ها میگن تقسیم قاطع شرکته از مقابله بین این دو از این معلوم میشه کسی که دیگری میبایست او را هدایت کند او صلاحیت برای هدایت کردن ندارد مقابله ما بین این دو هر کسی که هدایت میکند باید کسی باشد که دیگری او را هدایت نکرده فقط مستقیما خدای تعالی او را هدایت کرده است و هر کسی که دیگری او را هدایت می کند او صلاحیت برای هدایت کردن دیگران ندارد مقابله این چنین اقتضا میکنه افمن من يهدي الى الحق حقا ان يتبع اما لا یهدی الا ان یهدا کسی که ارز می‌شود، کسی که هدایت به حق می کند او سزاوار است که پیروی شود یا کسی که هدایت نمیابد و راه را نیافته است مگر اونکه دیگری او را هدایت کند پس معلوم میشه آیا این خوبه یا او این دوتا ملوم مقابل هم یعنی هر کسی که هدایت کننده هست او کسی نیست که دیگری هدایتش کرده باشه و هر کسی که دیگری هدایتش کرده او هدایت کننده نیست بنابر این این بزرگوار از این آیه یه مطلب دیگری استفاده کرده ما فوق همین ظاهری که ما عرض می‌کنیم و او اینچنین فرموده هدایت در این آیه شریفه هدایت کردن مردم نه به معنای راه نشون دادن است بلکه رسوندن به کمال است و او کسی صلاحیت دارد که مردم رو هدایت کند و به کمال برساند که خودش را خدا هدایت کرده که هدایت به قول طلبه دو جور داریم تو اول حاشم و الله که گفته هدایت یه وقت ارائه طریقه شما می از من که حرم از کجا میرم رو یا از این ور برو بعد دست راست برو بعد دست چپ برو میشه حرم این هدایت یه وقت نه هدایت چیه براتون می دارم می برم حرم می برم می رسونم به به مقصد و این دو معنا هر دو تو قرآن استعمال شده تو همه آشیم و داره از می شود به این که انا دینا و سبیل اما شاکران و اما کفوران. ما را را را نشون دادیم یه دفعه از این یه دن. این همون هدایت من را نشون دادنه اِنَّكَ اللَّا تَحْدِي مَنْ اَحْبَتْ وَلَكَنَّ اللَّهَ تو نمیتونی هر هدایت کنی، چطور هدایتیه؟ یعنی نمیتونیشون بهشون راه رو را نشون را بدی؟ خوب که به همه راه رو را داشت نشون میده. هم به علی نشون داد، هم به عبی بک نشون داد، هم به ابی نشون داد، هم به عبی لهب نشون داد، به همه داره نشون میده راه. این الا تهدی من اهدر یعنی چی؟ یعنی تو بخوای رو هدایت کنی که برسونی به مقصد، رو تو نمیتونی، باید خدا بخواد هدایتش این هدایت به هدایت معنای رسوندن به مقصد است و راه یافتن نه راه نشون دادن یعنی واقعا درک کردن واقع و رسیدن به واقع اینم یه معنای هدایت این بزرگوار از این آیه این چنین استفاده کرده که لا تعزم شد به اینکه افمن یهدی الحق کسی که انسان رو به حق هدایت کند و راه رو بهش نشون بده نه راه نمایی برسونش به حق کسی میتواند تواند برساند انسان رو به حق که خودش راه یافته باشد و راه یافته هم نه از دیگری راه رو یافته خدا او رو راه نمایی کرده و خدا او رو به واقع و حق رسنده است این چنین شخصی صلاحیت دارد اگر معنای آیه این شد که احتمال قویم داره که این باشه دیگه هیچ فاتحه هنه خونده است هیچ کس صلاحیت نداره که بگیم خدای تعالی مستقیما او رو هدایت کرده است. هیچ کس صلاحیت نداره فقط امون میشه به معصومین منصر میشه بر رسول الله صلی الله علیه و آله معصومین صلاحیت داره هدایت کرد از یه نکته یم بود تو آیه و این دو باید روش بیشتر دقت کرد. باشه تا بعدها ببینیم چه خواهد شد این مقابله ماغینه این دو یه است خودش برای خودش نفرمود افمن یهدی احق و اما لا یهدی این رو نفرمود فرمود من یهدی احق اما لا یهتدی یهدی در اصل یهتدی بوده لا یهدی لا یهدا پس بنابراین از این معلوم میشه هدایت کننده هدایت شونده اشخاص نباید باشه باید خدای تعالی مستقیما او رو هدایت کرده باشه باشه تا بعدها ببینیم چه میشه اللهم جا.